<متصفيق> پسر آدم دختر هووا کارگردان <متصفيق> رامبد جوان نویسنده فیلم ناممه محمد رضا احمدی پیشگوی تهیه کننده. سعید حاجی میری موسیقی سید بهنام ابطهی بازیگران مهناز افشار آقای زندی به کارتون رسیدگی میکنن این پرونده مال شما ولی شرطمون هنوز سر حامد کمیلی شما بودین که تو <صحیح> جوان اقا بزرگ که 6 سال پیش فوت کردخانهه.شییلا خداداد من نمیتونم سا رو ببرم تحویل داددم فرامرز صدیقی. دیق گذاش که تقصیر نداشتم. درست مثل تو و زندهات کی و مرس ملک وی به من میاد که مد اک عونی باشم یا خامین ملو اضاد ماشین داره با موبایلش صحبت میکنه ساختمون نوساز مبله، اداری، همه چی تموم فرمودیم واسه چه کاری میخواین خانم مهندس دفترای حقوقی شغلم وکالت آقا پسنده؟ بدک نیست اوه. ولی ودیهش خیلی بالاست یه همچین آپارتمانی تو این منطقه با این متراج متراجی بالاش برام چندان اهمیتی نداره از اینجا بهتر گیرت نمیاد مهندس خودت حساب دستت ده بشت صحبت کنین ببینین میتونه از پول پیش کم کنه ببخشید شما ببخشید شما فکر میکردم صاحب آپارتمان یکی شناس اما انگاری انگاری کفتره دو برجه است به شما هم کلید داده تمویش کنم مندست اف که تو برو سرمونه گذاری کردم مگی میخوایی بخری باشه خداحافظ جور نشد باش صحبت کنی ببینین حاضره که به جای کس ودیه هجاره رو بیشتر کنه همهش رو لازم دارم برای یک سفر خدا پسندانه خانم وکیل و آقای مهندس تصمیم میگیرن آپارتمان بزرگی رو مشترکم برای محل کارشون اجاره کنند سلام پیشی آها. آها. نسی پیشی با بای مرد شورو تو ببرن گربه نره درداشو سلام علی کسر اگه ای این واحد راست کارت اینقدر دسترس دست نکن راستش نمیدونم چی بگم لازم این چیزی بگی فقط سر تو حساب باشم این خب اینجوری که نمیشه که با نمیدونی با هم تفاهم داریم نداریم نمیخوای که زنش بشه خانم این چه طرز صحبت کردن آقا معصری نذاشتم که قانون پیرو به اون جلسه حضوری که ما خدمتتون بودیم میشون هزارن کمپلت اینجا رو رد کنه سال سالم چه واسه سند زدین هزار ماشاءالله معتبرم تو کار سادرات اونم به اروپا آفرین ببخشید چی صادر می‌فرمی تو پوست و روده‌ام چون اسمش هم چی خوب نیست اما پولش خوبه پس با این حساب آمادن و دیگر رو تمام کمال پرداخت کنم زکی شما بگو من باز چقدر بنویسن آم چقدر قبوله, قبوله. زک میگم هم خوب شده البته من هنوز مطمئن نیستم که بخوام نینه بستگی داری چقدر خانم چیه؟ با بریم بانگا میپرسیم در واقع میخوام مطمئن بشم که شغلشون مخل کار من نباشه میشه پرسیم البته با این اوصاف فکر میکنن ایشون تو کار کتاب و مجلجات باشه الو جانم سلام م. چی؟ شغل مهندس بکالت چی؟ ناشر هم ناشر هم دستی به قلم داره خانم مهندس وکیل هستم عکاسه البته نه از عکاسه عکاس کنه و کنه ها چی میگه عربی سناتیب که بیمونری از اینا هستم درسته؟ بفرم بیدرسته یک کتافرشی بزرگ محل کار پدر خانم وکیل. خانم وکیل درمال خوردن پاستی خدافز نمیدونیم چه دفتریه همه چی تموم شروع فعالیت مستقل عرفیت تو بید تبریک میگم کنم مرسی بابا جم آین قرآن یادت نره ببری قبل از هر چی. چشم دست درد نکنم فهمی شده اساسی حالا چجور آدمی است آم من که خیلی نمیشستمش ولی میدونم تو نشر کتاب مثل شما هم نویسنده است بسیار خوب به نظر میاد قردای سر بد میزنم میخوام دخترمون در کسفت یک خانم وکیلی ببینم <تصفح> <تصفح> با این جوانم آشنا بشم گفتی اسمش چیه؟ زندی فرهود زندی میخوره؟ تو نمیخوری بزرگی؟ <تصفح> خانه آقای مهندس همراه با مادرش تا سه روز طمعچی بود داشتم نمی‌دیدی رو از این فیس کو تا با پلیا اجاق گازم که داری خلاصو می‌تونی گرم کنی ها همه چی تمومه اگه بدون چه لوعتیه مامان دختره رو چه نمی‌گی دختره دم آپارتمان میگه <تصفيق> دختره ورودی جامعه آپارتمانی مردی توی اتاق نگهبانی ساختمونه این خور آید هم رفت با... سلام ببخش این پدر کسی رو سلاختو این که این چند تو کارتونار من بیاره بالا به من میاز که مزه انکبولتی باشم یا خامل ملویزه داده باشه <تصفيق> <تصفيق> سلوشون باشه. سبب خیلی شما رو عرض نن کردم پدر جا. جان پدردون کیه؟ من آقای قمبری هستم قنبری قربتون آقای قنبری توی آسانسور بود الیک کن بیه تو من کمکتون میکنم. خیلی ممنون آقای قنبری دندونهای مصنوعیشو از توی لیبان پرآبی بیرون میاره و به دهان میذاره <تصفيق> خانوم وکیل آقای مهندس با چشمای گرد شده به اون نگاه میکنن هر دو بر و دو طرف کارتون خانم وکیل رو میگیرن و میرن طرف آسانسور خانم وکیل پلاکی رو که روی اون حق شده مینا بزرگ مر وکیل پای یک دادگستری بر میداره و به طرف در ورودی آپارتمان میره اه شما پلاک ساخته آقای مهندس هم بیرون دم در آپارتمان پلاک به دست ایستاده ای وای روی پلاک اونم حق شده فرهود زندی وکیل پایه یک دادگستری هر دوی از دیدن پلاک به شدت تعجب میکنن بچی؟ من؟ من گفتم داشته را. خانوم شما بودین که گفتین کارتون یه هنریه چه میدونم این عروسی سنتیه اینکه من بعض وقتها برای دلم عکس می‌دازم چرا بت به شغلم داره تازه اون آرم نشر رو روی در ماشین چی میگی اون باله خانم محترم چه حرفی شما دارید میزنی مثلا شما اگه عروسی که ببعی بزنید پشت شیشه ماشینتون بنده بفکرنم شما کله‌پزی داری اه. به این ماشین من یه هفته است از یه انتشاراتی خریدم اونم تازه قصی هر دو به طرف تلفن روی میز میذارن الو خود کلاهبردارتی ببین من شکایت میکنم ازت به اتهام قشتر معامله من من زندی هستم دیگه فرهود زندی وکیل دادگستری الو بزرگمهر هستم وکیل رسمی دادگستری به خاطر این حق با بی تو می کنم ببین خوب گوشم می چی بیت میگم اگه تو به اون همکار نفس نفس واسه این خانم یه دفتر پیدا نکنه اون وقتی که بفهمیدم برای کی دفتر پیدا کنن من اول این رو دیدم اونی که باید بره جروالی هستین گوشی بله حالا میبینی هر دو با عصبانیت دو شاخه رو از پریز میکشن و سیم تلفن‌ها رو دور تلفن‌ها میپیچند. هر کدوم تلفن به دست با سرعت به طرف اتاقاشون میرن و مشغول تلفن زدن میشن. خواهش که میدونیم می این آجون هر چی داشتم خرج ببینیم شد. سه بار جراحی کردم آخرش هم اون چیزی که میخواستم نشد. بار خیلی نهدم. خوب فهمیدم. اگه پولم جور شد میدمش که خودشو به تو تا دوباره بریزی توی اون بینی. اینطور که میگیره حالش خیلی ساده است باش ازدواج کن با اون؟ آره مردی یه من دارم به تو میگه میخوام پول جور کنم و این دختره بره دنبال زندگیش و تو میگی باش ازدواج کن بسخه گربه اومده توی اتاق آقای وکیل اینجا یه کافی شابه توی یه پارک تشکر واقعا شرمنده کست چشمنه شرمنده خلیم دو طرفی یه میز نشستن و پیجورای چایی هم مقابل ندید چیزش هم کستن دویید کلیم آقا ببینین <تصفح> برو فرمین ببین خواهیش بکنم شما بفرمین لیدیز فرس مرسی من بابت حساب جدا متاسفم منم هم, هم واقعا ازتون رو از ازخایی اینجا اصلا حرفش هم نزنین تقصیر من بود تخصیر شما چقدر فروتنین حقیقتش اینکه من از صبح تو الان دارم خودم سرزنش میکنم چون واقعا این من بودم که شروع کردم اتفاقا من شروع کردم برعکس این شما بودین که با رفتانتون تو اتاق این تمومش کردین وار چقدر بزرگ وار شما لطف دارین برای همینم اومدم که تامومش کنم. با هم بریم بونگا ها. هر کدوم از اونا پاکت پاکتای رو رو میز میزنن که پر از چک پوله. خب. البته میتونیم بریم بونگا. اما بله. بعده. <تصفح> من فکر می کنم جوان جنتلمنی چون شما. فکر کنم بوزرم، توعرفو بذار من فکر می کنم که ما اگه شما نگفتین لیدیز فرست. مظ نبه که کی نکس خانم وکیل با عصبانیت تاکت و کیف و سویچش رو برمیداره و از اونجا بلند میشه و میره آقای وکیلم بلند میشه که بره ببخشید جونا؟ جسارته و خانم که همراه شما بودن حساب شما رو پس گرفتم همین تا درنامشون خانم وکیل به در مشتمه از ماشین پیاده میشه سلام خسته نباشی؟ اینی که چیه؟ آقای وکیلم اومد کیف به دست از ماشین پیاده شد خانم وکیل تو دفترش داره تلفنی صحبت میکنه در اتاقش کمی بازه آقای وکیل وارد آپارتمان میشه اونم داره تلفنی صحبت میکنه دم در اتاق خانم وکیل میسته آخه لابو طبقه مجدگانی هم داریم ناردی <laughs> از اتا دیه زنگ کردم صحب داشته باشین این اولشه شکایت میکنم چرا میکشه میکشی آقا مگه اینجا چاله میدونه؟ چیزی که حفظ داره گله نداره سرکر کنم بالاخره خواهیم دید که کم میاره حاضری همیالا غور کشی کنی؟ نه ولی حاضرم شرط ببندم هرکی باخ پولشو میگیره با و میره باشه چه شرطی؟ هرکی اول کار گرفت برنده. است. حاصل خودتو بازنده بدو خودتونو خودتون رو بازنده بدونید اصلا یالا سعی کنید درم در اصل بخاطر فراموش نکنید خانم وکیل داره پلاکشو به دم در آپارتمان نصب میکنه آقای وکیلم اومد اونم پلاکشو بالای پلاک خانم وکیل نصب میکنه خانم وکیل اومد میخ میکوبه بالاتر از پلاک آقای وکیل و پلاک خودش اونجا نصب میکنه. اوه این ماجرا اینطور ادامه داره تا اینکه پلاک مینا بزرگمر روی دیوار سمت راست در آپارتمان نصب میشه و پلاک فرهود زندی روی دیوار سمت چپ در آپارتمان نصب میشه. یه ارباب رجوع ماده دم دفتر وکالت. هر دو با هم می‌دوندند. می سلام علیکم. سلام پدر جان، خوش آمدی بفرمایید. ببخشید. نه خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرماین این طرف بدرجان بفرماین این طرف خودم در خیلی محجم از کشیر بیارین اینجا خانم ولکن خوبیر بیارید هم چرا همچین میکنی؟ بدرجان اینجا اه اه اینجا یه دقیقه صحب کنی اینجور موقعها خانمها بهتر به کار آدم رسیدگی میکنن خواهش میکنم این طرف. باید رسید راستی جلو پلاستتو جمع کن و برو جلو پلاستتونو خب اله همینی که گفتید ارباب <تصفيق> پروچو فکر کرده بود اینجا مطبه پزشکیه اتهام کاردازی به من نمیچست و حضرت آقا بفرما این تو پدر آقای زندی به کارتون رسیدگی میکنن این پرونده مال شما ولی شرطمون هنوز سریجاشه به خاطر این کارت تو قانون هیچ مجازاتی برای حالگیری پیش بینی نشده شما بفرمایید. تکلیف نخصه من چی میشه اقلیخ خوشکه میدادی خودم نگرفتم آرومش چشم دارم میرم چیزی نمیخوام دیگه ازتون گفتی سه بار در تو عمل کردی آخرش همونی که میخواستی نشد درسته خب بیا دکتر شکایت کنی وا نه گومینا جنون الان نامردام میخوایم عروسی کنیم اش خوشبخت ببین کی زت تو میگفتی دکتر بدون عصب‌خوشی دندون تو پور کرد و تو مجبور شدی بریم اونو بکشیش آره میتونین بریم ازش شکایت بکنیم میتونیم بریم یه دن برین ازش بگیریم چرا <تصفح> دو هفته پیش مرد خود رو علامتش کنه. اونی که تو گوشی فوت میکرد کیو میگه آها خب خب بیا ازش شکایت کنی. خودم وکلیت میشم و گیرش میارم. ازت حق و هم نمیخوام. <تصفح> اون که معلوم شد فرزانه بوده. خودش تو کوکو قبول نشده بود. میخواست از کنه درس نخونم. حالا ماشته کردیم. خداره شو که همه با هم خوبین. یه میگه روز به شری که سابقت گفتی برو بابا. شری که سابقت یه نگاهی بهت میکارم و میگه شکمت بره. آره میتونی به اعتام تو این ازش شکایت بکنیم <تصفيق> به شکم هم تو این کرده خب شکمت تحت تک کفال توه خودم وکیلت میشم عاده حسیت میکنیم ازش لابد یه چیزی هم دستی میدی قبوله چقدر قای. فرهود تو که عاقل بودی <تصفيق> آره هر کدومشون خسته و حلاب دست از تلفن زدن به این و اون بر میدارن یک کتفورشی بزرگ محل کار پدر خانم وکیله من موندم چطور دوتا جوون تحصیل کرده اونم وکیل خواهم دوتا بونگاهی دقلبات شدین خریت حالا سمیه ودیه اونو چطوری جور کردی امه سرور و مهربون کار خوبی نکردی بابا جون قد معلمت هم نکنین دیگه چرا به من نگفتی؟ قبل از قرارداد همون دیروز زنگ زدم گفتی ندارم میگم چرا با من مشورت نکردی که میخوای پول قرض کنی امروز رو میگم خب نظرت میدونستم حالا مثلا در مقابل عمل انجام شده قرارم دادی؟ یه چیزی تو همه مایه ها <تصفح> خیلی خوب برو بروه خوب صبح مفصل باید درباره حرف میزن همین حالا حرف میزنید. خوابم پرید. واقعا میخوای رو بدونی معلومه. اون موقع عصبانی بودم اما حالا... اصلا میگین چی کار کنم. گذاشت کن. اونم که تقصیری نداشتم. درست مثل تو. آره؟ آره. پول عمتم پس به. اون وقت این پسری یه جورای خوشباهلش میشه. ولی پدرت بیشتر خوشحال میشه خودت هم از این جدل بیاسه خلاص میشه خانم وکیل تو اتاقش داخل دفتر کار مشغول جمعوری وسایی بشه خیال نکنی که امو ما دلم برات سوخ تازشم وقتی عموی عزیزم فهمید کی دفتر خیابون فرشتاشو داد به هم. اگه اینجا مدام باید عرب بدم تیشه بگیرم شاید شما از رو بیکاری دوست داشته باشی با خودت نه بیار کباب به بربازی کنی ولی من وقت این بچه بازی ها رو ندارم همه حالشم پای این دو پرونده که به این پیشنهاد شده شرط بردم ولی ترجیح میدم برم ببخشین کدوم به دو تو پرونده رو میفرمایین حالا حالا واسه شما چه فرقی میکنه به نش شما دوتا پرودم نه یه پرونده واسه من روکنمن همین الان اسا هم کنم از اینجا میرم. مرد و مردونه؟ مرد و مردونه باشه خودت خواستی سلام خوش اومدید فرهود زندگی هستم وکیل پاییه که دادگو سری بفرمی خانم بزرگ میتشب دارم نزدک گوشی. بفرمایید داخل. سلام. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون زحمت کشیدین. بفرمایید. آخ سختم چه خبره؟ هیچی میدان جنگه. برانده شام از الان معلومه. چه زود اومدید؟ دیشب. بفرمایید. لطافت. وکیل مشغول جمعوری اتیکاهای فنجانیه که زد شکست دیدم رسیده دی فامیلی آقا فروت قمت نمشه این دوتو پروندهی که به پیش پیشنات شده خوش مونه مینا بابا سیامک تا فهمید دفتره بکانت زدی کفت موردمون رو بدیم به مینا موردتون رو؟ همون خونه عرص بدلی اگه اشتباه نکنم که زعمال ارث تو بود वाले بود ولی اینا که میشنستی همیشه مدعی بود هنوزم هست چون قرار ده با نا کنیم اومدیم ایران با راهنمایی توی پرونده تشکیل بدیم و خودت هم دوباره کارهای قضاییش بریم به خصوص که تازگی‌ها شدیم دنبال یه پرونده خوبم می‌گردیم برای دادگاه هر هم دا چیم که باشه ما قبول داریم یعنی وکیل هر باشم خب تو میتونی فقط وکالت سیامک رو بپذیری کین تو اون وقت بنده و جنابالی با ایسی راجب محتویت و پرونده کلی با هم اختلاط کنیم کلی همدیگر رو ببینیم و وقت با هم بگذارونیم آخرشم با این ادای علکی و پرونده بنجول جنابالی یه باخت مفتزهانه میشه اولین کیس حرفه من نخیر. خیر پاش پاشی کنید آقای سیمایکان خوب گوشتو واک کن من فعلا قصد ازدواش ندارم. اشتباه تا هم اینجاست دیگه بله بگو برو دو شعر رو بکن همم اون راحت کن نه یه کاری بکن دیگه شیک رو خب عزیده تو خوشحال شدم از این ناصر رو بچه شو بگو آه آه آه. خب خدافز راستی ناصر رو که میشنسی به سر عمام. فکر کنم ایکی دوبار دیدمش خب که چی از زنش جدا شد تو چرا خوشحالی آخه با خانمش سر بچه شون کل کل دارن بچه خانم وکیل به طرف در اتاق میری در رو باز میکنه می‌بوی آقای وکیل پشت در گوش وایساده. واقعاً که واقعاً که چی؟ واقعاً که چی؟ فکر کردم این دره اتاق منه نگو که اون یه دره. خانم دو تا دره. اومد... اومدم بیام دو تا دره اینجا. از هر کدوم د... د... اون یه اتاق در منه. اون دره اتاق یکی در منه دره اتاق اون یکی. داد میزنه اینجا خانم... هی؟ اه... کافر اقوی را به کیش خود پنداره اه... بریم توی پارکینگ ساختمان آقای وکیل پشت چرخ ماشین خانم وکیل آیم شده خانم وکیل با زن و مرد جوان داخل ماشین نشستن مرد زیگار میکشه هرچند پوز این پسره حسابی زده میشه ولی نه این اون کیسی نیست که من دنبالشم نمیتونم خودم رازی کنم که یه بچه ای را مادرش جدا کنم خانوم وکیل شیشی سمت داننده رو پایین میده آقای وکیل حرفای اونا رو میشنم داری اشتباه میکنی؟ اون برای بچه ناصرم هست مندم تو مسئول بهش تو جهنمش نیستی خیلی چطور میتونم واسه جدا کردن یه طفل منصول از مادرش تلاش کنم درود برای اون قبول کنم. نمیخوام تو این جدایی قدمی برداشته باشم ولی حاضرام تو عالم خیشاوندی یه جلسه مشاوره براش بذارم غیر رسمی رای رایگان همین امروز هم بفرستینش دفتر البته جنابالیم علی هم همراهش نمیایین به مرد میگی مرد میره خانم و وکیل همراه زن از ماشین پیاده میشن شما همیشه با آقایون اینجوری رفتار میکنین دیگه بکه جنبالی از تغییر آقایون قنطو دل آب نمیشه بیرون ساختمون کسی بادی لاستیک ماشین پارک شده ای رو خالی میکنه زن جوون به بیرون ساختمون میاد بیره طرف همون ماشین متوجه پنچه شدن لاستیک میشه با خوشحالی بر میگرده به داخل ساختمون در مدر به آقای وکیل برمید اوه چه حسن تصادفی؟ خوش که پنج پنچه شده پنچه؟ اصلا خودتون رو رد نکنیم بفرماییم مینات جون یکیچ یک. همزمان آقای وکیلم والد آپارتمان میشی بله سلام من ناصر نیکو هستم سلام اول شما بفرمایید خوش میکنم باشا. آقا بزنگ چطورن؟ آقا بازر که 6 سال پیش فوت کردن خانم ای آخه خود رحمتشون کنه حالا چرا زمین درستادیم بفرامیت خوش میکنه. خانمی وکیر به سرعت درو میبندیم بچه ها راجع به مشکلتون بابن حرف زدن امیدوام درک کرده باشین چرا وکالتتون رو قبول نکردم ولی فکر نمی کنم به جلسه مشاوره مشکلی ایجاد کنه به هر حال در خدمتتون هستم محرفه میکنم آقای نیک خوب برای کار حقوقی تشریف آوردن خوب کردن خیلی خوش اومدید اگه شو نکنم آقای زندی خوش وقتم بفرم این طرف خواهش میکنم خانوم نوشیدنی لطفا بفرمی خواهش میکنم آقای وکیل با خوشحالی به خانوم وکیل پوز میده آدمه وکیل میره سراغ موبایلش من نمیخوام این ماجرا خیلی باز بشه جناب جنا بزنید خب من راحت بشید میتوت منو فرخوذ صدا کنی بله این که بالاخره پذیرفتم کارم و به وکیل بسپارم به خاطر همین جوان بودن و تازه کار بودن شماست میدونین که قدیمیا به خاطر شهرتشون به قول سینما یادم اکران میکنن در صورتی که من اصرار دارم همه چیز در سکوت و بدون هر حاشیه برگزار بشه مظلومام که متوجه میشیم چرا خاموش چرا خاموش؟ خاموش، خاموش. از این بابت خیالتون کاملا راحت باشه. متشکرم. با اه... مخصوصا این دستیارتون. من همیشه از کار کردن با فامیل پریز کردم ایشون، حقیقته شده که من خودم هم خیلی راضی نیستم که با ایشون کار بکنم. به خاطر همین مطمئن باشید امروز اساسیشون رو جمع میکنم و از اینجا میرم ان شاء الله. خانم وکیل تو اتاق خودش داره تلفنی صحبت میکنه توبه کهی رفتی نه نه نه نمیخواد برگردی ببینم مگه قرار نبود نظر بفرسین دفتار من جی شدی دفعه رفیق شیشتونگی آقا از آب در اومد پس حتما کار اون خواهر هفت خطته هنوز سهرانه پس یقینا کار خودشه ببینم هیچ شماری ازش داری؟ تو اقل اسمش اسمشیه کجا کار میکنه خارم این سرش به در چست و میگه محبوبه ابتحاج خب مجله همشهری خانواده حال خواب باشه خدافز فرکوت زندی ازت متنفرم ازت متنفرم پس تبقی قرار از پنجشنبه تا شنبه پیش مدر و خانم وکیل با سینی لیوانای شربت وارد اتاق آقای وکیل میشه. آقای وکیل متعجب از این رفتار او با شک و تردید شربت رو میگیره. میخوایش بکنم <تصفيق> پس گفتین که سه هفته سامانه برده و تحفیل نداده. خب بقیقا سه هفته و دو روزی داروغه سالمانو دوزید. آقای قنبره سلام. مهمون داشتیم. اومدم از طرف لیوان قرض بگیرم نبود. خونم وکیل در اتاق آقای وکیلو باز گذاشته بود. تلفنی با سرایدار صحبت کردم. قربان شما خدا افس. آقای وکیل که میفهمه با لیوان مخصوص دندان‌های مصنوعی سرایدار شربت خورده حالش به هم میخوره و با سرعت از اتاق به طرف دستشویی میره. چه خبری؟ حتماً واش ترافیشه سره. درمی آرام این بیرون اینجا دفتری یه مجالی خانواده است کارمندا مشغول کارن الو دفتر جدید سردوی بده من آخرش من کارامو به خاطر تو از دست میدم بله خانم خانم ابتاهاش من مینا بزرگ هستم وکیل رسمیه دادگستری. وکیل؟ وای وکیل دیگران نباشه خانم ابتاهاش من فقط قصد کمک بشم توی یه کافی شاب خانم وکیل با همسر ناصر نیکو و پسرش در حال گفتگو و صحبته وقتی شنیدم قصد مهاجرت به خارج از کشور رو داره وقتی شنیدم سامانم میخواد به خودش ببره من بودم که به مامان گزارش دادم دیگه برش نگردم. ما حت کودکم نذاشتم بره. حتما میدونی که علیهت اقامه دعوی کرده. بله. ما باید با تمکین در برابر قانون و توسل به اقدامات قانونی احقاق حق کنیم. تا قبل از اینکه انگیزه تو بهم بگی فکر کردم اینم یه دسیسه از طرف ناصر. آخه وکیل که یهو از اساسمون نمیافت. چه مظلوم. مظلوم خالص. بر ما مزنا مظلومی. خوبه. شما رای ناصر بهم بده. آقا ناصر چه زود فامیل میشه؟ بله. شما وکیل ناصره. بله بله. خانم وکیل وارده دفتر شکل. آقای وکیل جعبی شیرنی به دست به طرفش دهانتون رو شیرین کنین من شرکت بردم به قول بابای عزیزم یه نمایش ضعیفه آله درسته نماشه قبی تقلیه اتاق یک تراجدی تمام ایار برای شما تراژدی واقعی که توی لیبان شربتتون بود که هرچی هم شیرینی بخوریم مزدش نمیره ببین خانم کچه بود خانم کوچولو خودتی خیلی خوب خانم بزرگ من شرط بردم هم دیدی پس هر چیزی که باید جلو پرسه تو چم کنی امغان اما مطمئن باش قبل از رفتن تلافی اون عمل زشت سر در میارم اگر هم دیدی بیکار مودی میتونی بیای پیش خودم شاید یه ذره یاد گرفتی ببین بنده خدا بهتر تو یه فکری بری برای خودت بکنی که اگه کار دوزی نکرده بودی همین یه دونه هم نداشتی تازه رنگین بود اوف چنگل شو دراز دست گلندار بیدا هر موبایل به دست و کشت به هم دیگه سلام. مشغول مکالمه میشن ببخشت خدا ببخش من زندی هستم و که سابقه خانم ابتاش امرتون رو مفرمه الو بگیر میشنو الو گفتم که میشنو تو چطوری خوبا کفتم چطوری؟ آه. اون دیگه یه رازه حرفه‌ایه. دیدی شرط رو نبردی؟ ببین از رو میبرمه؟ نه شرط میمندی؟ زندگی. سر زندگی سفاییت به درد من میخوره سر اینکه سر اینکه حای که نشیشه دادرسی رو باگوزار کرد دومشو بذاره رو, رو کودشو که رفتی حالا می‌بینی؟ اگه نباختی اسممو عوض می‌کنم. میکرم م... میذاری چی؟ بگی؟ چی تو زیزی گلو بگ خیلی بهتون میاد. خیلی بهتون میاد. آقا یزندی میخواد خانم وکیل تو خونه داره با همسر ناصر نیکو تلفنی صحبت میکنه فردا دادخواست متقابل تسلیم شوبه رسیدگی کننده میکنی یه وکالتنامه تنظیم کردم که باید امضاش کنید. خواستم صدور حکم ممنوع الخروج شدن سامان تعیین کردم. همینطور در صورت اقدام مهاجرت ناصر باگذاری هدارات به جد پدری. اون پیرمر پیرزن که نمیتونن از این آتشpore مراقبت کنن. چه بهتر. اون وقت گزینه بعدی میشه مادر تل. فردا اول صبح میریم مخ سامون تحویل ناصر میده ازاشم رسید میگیری. باهاش هماهنگ کردم. من نمیتونم سامون رو ببرم تحویل بدم. نگران نباش. فکر اونجاشم کردم. حالا بگو رنگ و مدل ماشین ناصر چیه؟ اونجا توی خیابونه. خانم وکیل تغییر چهره داده با یه عینک دودی بزرگی که گذاشته رو چشمش. اون مشغول رانندگیه. میپیچه جلو ماشین ناصر نیک خوب. کجاست؟ من حواسم کجاست شما؟ vali بگین شما وگرنه نمیپرسیدم شما من از طرف دیگه خانم نیرکو در بدر مهده که پسرش منتظر و مسترب کنار ماشینش ایستاده خانم هیچ اتفاق نیفتده فقط چسبیدن برای دیگه باید افزار بیاد یعنی چیه نه خانم میگم یعنی این چیه اصفاق نی افتاده افتاده وقت افزار, افزار. ببینید خانم محترم من کارت بیمم رو تقدیل میکنم خزاراتش هم هرچی با چه تقدیل میکنم من عجله دارم من هم بچه که باید برم اونو برش دارم افزار علو ناصر نیفو میفهمه زن همون خانم مینا بزرگ مهره وکیله به سرعت به طرف ماشینش میده. خانم وفی سری به خانم نیکو زنگ میزنه. واقعا هم چیزیش نشده. جابا تو چیزی در سوال اشتباه محصبات. سخت در اشتباهی رقیب تقویم تو یه نگاهی بکن طبق قرار قانونی دوباره بچ از امروز تا صبح یک شنبه مال مادرشه تو دادگاه میبینمت جناب رئیس ساختمان مجتمع قضایی خانوادگی طبق مفاد مנדارش در دادخواست تقدیمی خانم محبوبه ابطهاج مدتی قبل با انقضای مدت قانونی سه روز در هفته که میتونن فرزندشون و نزد خودشون نگه دارن از تحویل طفل به پدر استنکاف فرزیدن. لذا... جناب رئیس، طفح تحویل خواهان شده. اینم رسیدش. آیا اینی خرود تایید میکنید؟ بله. جناب رئیس، لطفا اقرار خواهان در صورت جلسه قید بشه. بله. جناب رئیس درقبال ارائه رسید مذکور از خوانده این برگرد شده که به قضیه میشه ازش عدم تحویل 25 جوزه تفر نشی گرفت لطفاً ضمیمه پرونده بشه و اما درخواست ما ارائه تعهد قانونی برای عدم تکرار این قبیل اقدامات از طرف خوانده است مشکرا ژنرال رئیس اقدام موکل من صرفا واکنشی بوده در قبال مهاجرات قریب الوقعه خواهان به همراه تفر به این مظرهم رسیدگی میشه موکراتون کجا هستن؟ پیدا میشه بسیار خوب بفرمایی داتون <تصفيق> بسیار خوب اجالتا میپردازیم به دوای متقابل تایید میکنید قصد مهاجرت و اقامت در خارج از کشور رو داری؟ خیر سقیل میسن که شما از صرفشون جواب میدین وکیلشون که هستم خانم خطاب به شخص خانده بود آه ی زندی بله <تصفيق> ببخشت خیر جناب رئیس همچین قصدی نداشتن اجل لیست ادعواتون چیه شما؟ کپی برابره اصل یک آگهی که به درخواست آقای نیکخودری که از روزنامه‌های انتشار رو چاپ شده بود مبنی بر حراج لوازم منزل برای تبدیل به احسن بوده. پس چرا تا وکلا به وکلاب دادگاه باشه؟ چشم پس چرا در آگهی قید شده به نازل ترین قیمت به علت مهاجرت؟ برای بازرگانی؟ خیلی این کارو میکنن جناب رئیس. جرم که نیست. مثلا قرار بود همه چی چرا خاموش باشه؟ تمام جیکو پیکم روزو داریه. اساسش طرفمون بور شد. خانم بزرگ مهر مبکله چون نگمدم دیگه باید برستم خیارم از مطلعه این راحت باشه راحت راحت برودنشون لباسون خونه که از همکانم امکان رو به فکر محبای برسیم اومدم سلام ساند مدل 97 جهت ارائه عدله جدید اقاضه محلت یک روزه دارن حالا چرا فقط یه روز برای اینکه نگرانی وجود داره اگه بیشتر از این باشه خواهان تفر را از کشور خارج کنه صحیح هست صحیح هست اینوز که گین زدیم ولی هر تو روشده بر دیم پیدا منه هر تو پیدا کنیم حتی اگر رفت باش مریخ آقای وکیل بیرون ساختمان داخل ماشین نشسته خانم وکیل و همسر آقای نیکو از ساختمان خارج میشن از هم که خدا حافظ خانم وکیل توی خیابون منتظر ماشین است ماشین نداری خانم کوچولو بابای وای از زد امروز گرفتی احبه. خانم, تو. خانم وکیل سوار نمیشه و کمی دورتر میره آقای وکیل دنده عقب به طرفش میره بزاگمه. یه ماشین پلیس آمد و پشت ماشین آقای وکیل نگه داشت خانم وکیل خوشحال پوزخن میزنه خانم. بله خیلی هم هرون نه جناب سوار اجازه بدید جناب سوار اجازه بده هم تازیح میدم خدمتون خانم بهشون که <سطور> <سطور> <سطور> جناب در متوجه میشید بفرمایید آقا آقا دفتر وکالت آقا و خانم وکیل همزمان از اتاقاشون بیرون میاد در حال قفل کردن در اتاقان دیروز خوش گذشت چرا بلیطون کردن. این اینم واقعیت قانون نداره؟ داره. خوب هم داره. تو اتاق ملاقات هستم می‌کنم خانم وکیل. امروز قول میدم به شما بیشتر خوش بگذره. خاین در زمین داریم میریم. خاین یه سلامی به آقای قنبری هم بریم. تلفن اتاق خانم وکیل زنگ میزنه. اون با اتاقش برمیگردیم. آقای وکیل به دستگیره آویزون از قفل در خیره میشه. فکری به نظرش میرسه. خانم وکیل تو دفتر وکالت مونده و آقای وکیل در رو گفت کرده و کلید خانم وکیل با خودش برده بفرمایید. بیشارت میکنم خود خرابه میکنم وکیل در بید بس وقتت میکنم مگه دستم بد نرسه پسرین؟ لات بیزاره پا ببین فقط دو آکان که فقط دستم بد نرسه وگر نم میدونم باش. خور کنم <تصفيق> دنیا داره مکافاته در قول جونم از هر دستی بدهی اصلا اون دست, دست پس میگیری حواصل باشه اموز خیلی دیر به دازگاه نرسی بعد از این بدفرز آقای غنبری یک ایتنات خبر کنی اصلا بری یا همبر بیارید تو رو خدا عجل نکنی بولان نکن خانم یه دقیق دندون رو بذار ببینم ما چیکار دارم میکنم آخه بجو بین مگه من جیپ بانجم همسر نیکخو با پسر و پدر و مادر آقای نیکخو توی ماشینی نشستند که در حال حرکته. اتاق قاضی. آقای وکیل و آقای نیکخو و قاضی منتظر نشستن بالاخره خانم وکیل از دفتر بیرون میاد، به سرعت سوار ماشین میشه و به قاضی تلفن میکنه. قاضی من اینا بزرگمه هستم وکیل خانم اعتاح باید یه توضیحی بهتون بدم خانم وکیل به ساختمان دادگاه رسیده خانم وکیل داخل ماشین در حال رانندگی هستن استفه تنفس رسیدگی به پرونده رو شروع می‌کنیم <تصفيق> هیچ معلوم هست شما ها کجاییم پس کوشن این دوتا مگه نگفتی ساما گفته که ناصر میدونه کجا پرسده لشون الان لباسونیم الو الو اه. سلام ببخشم جلو بیس سلام بزرگ قرار بود امروز شما با عدله جدید تشریف بیاریم علی نام و اومدن نام و این را آوردین متاسفانه دادگاه بیشتر از این نمیتونه منتظر بمونه رضا ناچارم ختم دادرسی رو اعلام کنم آی جزی بچاره شدیم ببینیم یعنی باختی منو نگاه کن باختی نمیدونم میدونم ببین مسافرتت تو نمیشه فکر کنم که یه سفرای رو توریستی چابزه بوده همین بابا بابا بابا من دست خیانت کرده من <موسیقاً> من زندان نمیذارم <بازم> این بچه رو ببریم این دنیا بس لباسون لباسون برای خرید لخوتی ها بود ساکت ساکت همه بلشینند و ترن بیرون کسی هست که مراقبت گفت باشه من برم بیرون. من مگه دباسر من نیست باش آخی <تصفح> ممنوع الخروج شده. ناصرم اگه بخواد، رو به سفر خارج از کشور، یا به جای اون وکیل آماتورش توریستی ببره، بویاس وثیقه بس بরাম یا یه دادخواست دیگه بدم برای باطل کردن حکم ممنوع خروج شدن سامان وای خدا مردم از خوشی. دفتر وکالت. فرمایش. سلام. امرتون. بریم. کجا؟ تلفونی که بهتون گفتم ساعت دهانیم توی بونگا قرار گذاشتم. شما کار خوبی نکردی. منظورتون چیه؟ ما با هم شرط کرده بودیم که اگه اولا حکم دادگاه هنوز قطعی نیست. ممکنه ما موقتاً تو مرحله قانونی اعتراض بدیم. چند درصد احتمال میدین دادگاه تجدید نظر رای اولیه رو تایید نکنه؟ شما بگوش 8 درصد. اصلا وسیقه میذاریم. برای ابطال حکم داد خاص میدی. شما چی میخوای بگی؟ شرط ما نتیجه این دادگاه بود که اونم باختی. شرط ما نتیجه این پرونده بود که هنوز مخدومه نشود. تجدید عتبه درمیاری گلو. بعدش ما دارین واسهتون بله اه. سلام ناسه توی من اتفاقا منتظر تماس بودم آره راجع به همون موضوع فقط اه. فقط ناسه جان. میتونی یه پنج دقیقه دیگه تماس بگیری تا من یه موجود مزاحم از اینجا درش کنم حاجه کنم خدافیز تو تو به من گفتی که آقای وکیل در رو به روی خانم وکیل میبند خانم وکیل او اتاقش گوشی موبایلش رو روی ضبط صدا میذاره و اونو با چسب به های آهنی باریکی میبنده و از بالکن اتاق خودش به طرف بالکن اتاق آقای وکیل می‌بره. وکیل تو اتاق مشغول مکالمه تلفنی با ناصر نیکخوئه. موبایل به پشت پنجره رسیده. زنگ موبایل خانم وکیل بازه از خانم وکیل با تعجب گوشی موبایل پشت پنجره میبینه خانم وکیل با سرعت موبایل به طرف خودش میکشه آقای وکیل بلند میشه و به طرف بالکن میره خانم وکیل خودشو قایم میکنه خانم وکیل داره صحبتهای ضبط شده ای آقای وکیل رو گوش میکنه من که خودم این دختره رو سوزگش حاجی باشه یه موقع زنت بدین انصاف میسَم این دو سری سو حفترم نظری بچه بیچیش بشه شدنش که شدنیه متواظعت ماده قانونیشو پیدا کنه نه نه الان نه ببرم از اینجا سینا ببرم خونه بعدش برمیگردم و یه مرجور بکنم تو هم بیا اینجا اگه تونسی قانون بکنی که این تنبیه حقشه اون وقت یه دادخواست جدید میدی چیکار میخوام بکنه آقا. آقای وکیل از آپارتمان خواهش میشه به وکیل یه باقی نردبان چوبی رو بغل کرده و به سختی از رپلای ساختمون بالا مییاره. سلام. سلام. متاسفم دیگه دارم تاتمی باشه. میشه ببخشید گوشیتون رو دستگاه گوشی پزشکی رو از پزشک همسایه میگیره. نردبانو در فاصله بالکن اتاق خودش تا بالکن اتاق وکیل جا میده. گوشی رو داره گردنش انداخته و به سختی در حال عبور از روی نردبان به طرف بالکن اتاق آقای وکیله نردبان چوبی شکست خانم وکیل از لبی بالکن اتاق آقای وکیل آویزون شده نردبان چوبی به پایین میفته خانم وکیل سعی میکنه خودشو به بالکن برسونه بالاخره موفق میشه تو بالکن خودشو زیر یه مخفی مخفی میکنه شب شده آقای وکیل با ناصر نیکو توی اتاق مشغول صحبتن خارم وکیل یواشکی دهانی گوشی رو به شیشه می و دو طرف گوشی رو داخل گوشاش میذاره. اینجوری می صدای اونا رو بشنوه خانم وکیل از پنجره وارد اتاق آقای وکیل شده و مجبور شب و همونجا بمونه در اتاق آقای وکیل قفله. نام اینم مردایین اینا. بله. سلام چطوری؟ گرفتاریت برطرف شد؟ خب پشم شپای اینجا. به بابام گفتم امشب خونه توام. محبوب نمیتونم برگردم؟ کجا برگردی؟ تو اونجا چی کار میکنی وقت شب؟ چطوری رفتی اونجا؟ از پنجره اونم مثل موقع خودش خراب بود باور کن دیوونه ای که اونا میگن تو دیوونه ای من دیوونم کیا میگن؟ پت مات. امناصر فراهود دیگه همی بدونی چه خیالی دارم طبق ماده 257 آینه هفت دادرسی مدنی .com میتونه به درخواست هر کدوم از طرف این قرار ارجای اداره رو به کارشناس مربوطه صادر کنه که در مورد تو کارشناس پزشکه البته میدونی که خود بیماری هم خیلی تاین کننده است. ببینم تو از این قرص دار که مصرفی کنی فقط روزی دو تا قرص عسل صبح و این مریضی هم از وقتی شروع شد که این طلاق و طلاق کشی ها شروع شد. حالا یعنی من روانی عزیزم این چه حرفیه می‌زنی؟ اگه اینجا باشه که نصف مردم دنیا روانی‌ام. هم. نمونه‌اش همین فرهود زندی. حالا اون چی که میتونه موجب صدور رأی علیه تو بشه اثبات عدم صلاحیت توه مثلا رفتار نامناسب با ساما عزیز دلم خب لخره هر مادری میتونه بعضی وقتا به بچهش تشر بزنه ولی حتما نا اقدام میکنن راستی سرشب گفتی یا توی از ناصر داری تریاک تو مطمئنی یعنی مطمئنی که اگه بره آزمایش بده ثابت میشه اگه ثابت نشه بیچاره ای ما ولی اگه بشه صبح شدید. آقای وکیل با ماشین به طرف ساختمون وکالت میک همسر نیفهو توی ماشین منتظر دم ساختمون نشسته آقای وکیلو میبینه به سرعت بیرون میاد و به طرفش میره غل حرف بزن اومد دیگی آماده ای آره خدا آقای وکیل و خانم نیکو از آسانسور میان بیرون به آپارتمان وکالت رسیدن. خانم محسنی که پرونده ای دستشی منتظر پشت در آپارتمان وکالت نشستی. خواهش می‌کنم شما چه چه به شما کردن؟ ای خودتون آقا با شما می‌کنم به من نگاه به شما نگاه کردن؟ با کلید قفل اتاق رو باز میکنه میخواد در رو باز کنه. خانمی نیک خو مانعش میشه یار کریم من کم میارم من به خاطر بچم همه کار میکرم حالا که این تو شد من سر سرداری میگیم سرمنداد نزنید من امروز باید تکلیفم رو روشن کنم خانم شما چند از اینجا تشریف داشته باشیم بزنین وقت بیک بعد ما با هم صحبت میکنم مادر چون پروندارو بدید به من شما حرف ندارم دا بزرم آقا من فقط یه پیغام دارم شما بعدش برسی به این مادر جورم بزراد باشم مادر جور رو انداز با ما اچی کار داری خیلی خیلی اینجا چی خبره؟ منو بگو کجا آمدی آقای وکیلو به طرف بیرون میبره خانم موسم اونجا رو سندلی رو به در ات خانم وکیلی یاواشکی در اتاق باز میکنه و بدون کفش بیرون میاد و به طرف اتاق خودش میره. زن موسن از دیدن اون شوکه میشه. با. خدا مهرگم بده. خانم یک من واقعا نمیفهمم. داوودم که خب به نفع شما رای داده که. رای داده که داده؟ یعنی چی آقا؟ اصلا خوب کرده رای داده. خانم وکیل با sms به خانم نیکو اطلاع میده که به اتاق خودش میره. اصلا نیست. اتفاقا و موکلتون نداره این پرونده هم در روالاتی خودش تو دادگاه میکنه. خدا نگه آقا معلوم میشه یا چه خبره دفتر وکالتت خونه است دیونه خونه است. یا اینکه استغفر الله مادر جان استاخ استاخ... خدایا توبه توبه توبه مادر صبر کنید بعد توضیح میدم خير تو مادر جون مادر جون پروانه خانم محسن زیر بغل آقای وکیل مونده نaser باور کن هر قاضی منصفی رو تو شرایط میدید بدون مراحل قانونی رای به جنونش میدا آر... آخه تو اصلا میخوام بدونم چه جوری 7 سال با این زن سر کردی بابا و گوشی گوشی گوشی تلفن دارم گوشی بله سلام حالتون چطوره خانم خواهش میکنم به خدا من واقعا شرمندم اتفاقی که امروز جلوی در افتاد بله بله پروانتون الان پیش منه با پیک بفرسم بعد بریم من به شما کاملا حق میدم بابت اتفاقی امروز ناراحت ناره بشین ولی واقعا یه دختر جوانی پا برن نست اتفاقی من؟ چطور ممکنه آقای وکیل تازه میفهمه چه اتفاقی افتاده یعنی ممکنه؟ صورتنمای رو به روی موجی گیری. علناصره انگشت دستته. ببین هر قاضی منصفی اونو دیده بود بدون ته مراحل قانون بهش گفته بود ای والله. آقای وکیل اومدی روی بالکن. لنگ در کمد اتاقو باز میکنه و در فاصله دوتا تا بالکن قرار میده. اون در حال عبور از روی در به بالکن اتاق خانم وکیل میرسید. پنجره رو باز میکنه وارد اتاق میشه و گوشی تلفن خانم وکیل رو باز میکنه و یه فرستنده داخل اون کار میذاره خانم وکیل تو اتاقش مشغول صحبت تلفنی با خانم نیکخوه آقای وکیل همه هوایی اونا رو میشنوه دادخواست دادن بابات عدم طاحیت تو و همون بهانه عدم تعادل روانی؟ خودشون دیوونه قیافه قیافه زندیی دیدنی اگه بفهمم ما هم عدم صلاحیت ناصر معتاد درخواست کردیم. <تصفح> <تصفح> ناصر تو چیزی میکشی؟ من نه تو، نه بابا فقط یکی دو پکونم واسه تسکین. آبا دکترم در جریانه بسهوزه پدرتر نمیدید. همونام هم میذریش کنار فهمیدی؟ چه لازم باشه برید آزمایش بدیم باشه هرچ تو بگی. یه آشی براش بپزم یه وجب روش روغن باشه. صبر تو که با اطمینان گفتی معتاده. من چه میدونم؟ سامان چه چرا یکیشا میگفت با چشای خودش دیده یه چیزایی دود میکنه که سیگار نیست. اونم قایمکی. شکایت کیفری کردن. ادعای شرف. میدونی این مجوزاتش چیه؟ حالا بجزی؟ ما میدونیم. حالا میگی چیکار کنیم؟ چیکارشو دیگه من تعیین میکنم. تو باید یه زنگی به ناصر بزنی و یه جوری باید. من اصلا ریختش رو ببینم. از تو تلفن که ریختش معلوم نیست. حرفش هم نزن. اینو از من نخوا. اصن من میگم خانوم کوچولو. خیلی خوب. بذار من یه خورده فکر کنم. خدافز به خدا سپردمت خیلی مراقا خودت باش آده کردی اقا نصیر نمیدگیم داشت فرود بیش میکنم علا نصیر ببینی نفیل خر نشی باش. این چه طرز حرف زدنه ببینی بزره اینه که اگه بهت زنگ زدن وا ندی رضایت ندی بعد چه شدی پش پشکتی دارم خودشه سلام سلام آقای نیک خوب بله سلام بله صحبت کنید مادر خوب هستم به مرهمت شما امرتون می‌خواستم راجبه اون اتهامی که سهواً توی دادخواست من ما وکیل دارم خانم با ایشون صحبت کنید عمران خانم وکیل محکم گوشی رو میکوبه به زمین گوشی تلفن هم باز میشه ای وای متوجه فرستنده میشه یه سوال تو قانون برای کار گذاشتن فرستنده توی گوشی تلفن وکیلی که با آدم یه پرونده مشترک کار میکنه چه مجوزاتی پیش بینی شده؟ خانم و آقای وکیل توی کافی شاپ مشغول گفتگون. پس بنابراین شما این دادخواست ادعای شرفتون رو پس میگیرین و دیگه پیگیرش نمی‌شید. ولی شما هم قضیه شونو دیگه خیالت ولی مجوز افترا ابداً با شون نیست. البته خب اثباتش کار خیلی نیست. قطعاً اثر انگشت روشه روی تلفن و خود گوشی حالا که فکر می‌کنم میبینم غیر از افترا اتهامات دیگه هم به شما وارده مثل سواغ سم عدو وارد شدن به حریم حرفه‌ای وکیلی که دارین باهاش روی پرونده مشترک کار میکنین و شاهدنین با اینکه چه هم شامل مساب بن چیزی ثابت نمیشه آقا وکیل لنگه کفش خانم وکیل رو به اون نشون میده ها تو بمزه جای تن زبالارم که می‌جوری چه بالکن اتفاق افتاد از اولش هم یه هوا برکان بزرگ بود شباج دیگه ای هم هست. مثل کوچه مائینه دکتر بهشتی که هنوز جای گردش باشه شیشه ای اتاقمه و یه گُلستر هم بخو خانم وکیل نشون میدم. دادن. فکر می‌کنه تو اتاق من چیکار می‌کرده؟ آگه این کیچاد به تو توجیه دیگه ای واسش داشته باشه. خیلی بی عادته. وکیل بلند میشه که بگه چه با یه گُلستر یا لنگ کفش که احتمال میره از اتاق من دزدیده باشه، با یه لکه گِرد پشت شیشه که تا الان، با دوباره حتما حسابشه رسیده، تو ایجادگاه وسط طرم خورد کپسولی شنادی چیز دیگه است به خواهیم دید محضی اتناهی توز نارز میکنن سند خونه ناصر همین امروز از رحن باک در ملو فردا به عنوان وسیقه تو دادگاه است به همراهی یه دادخواست بعد از اون ناصر و سامان جناب الگر اصلا منصفانه نیست قانونی که اجازه بده یه مرد تفل پنج ساله رو به پشوانه یه وسیقه چند میلیونی از مادرش شده کنه اصلا شما میتونین واسه خودتون تبلیغات بکنین تو انتخاب ها شکل کنین نماینده مجلس بشین اولتا که صلاقیتتون رد نکنن اون موقع یه واسه تغییر خانم بی بی. <تصفح> خانم وکیل بلگت بل میکوبه به ماشین آقای وکیل خانم وکیل توی ماشینش میشینه پنجره ماشینو پایین میکشه از توی آینه میبین آقای وکیل هم میشینه توی ماشینش که با فاصله کمی از ماشین اون پارک شده دو نفر موتورسوار به ماشین خانم وارد نزدیک می‌شوند. این چی پلیس! آقای وکیل موتورسوارا رو تعقیب می‌کنه. به جایی می‌رسن که با در بزرگ توری آهنی مسدود شده و مقدار زیادی نخاله اونجا ریخته. از موتور میافتن آقای وکیل با ماشین به اونها نزدیک میشه. با هم درگیر میشن خانم وکیلم با ماشین به اونجا میرسه خانم وکیل با میلی دوزگیر به را حمله میکنه بلاشو. بلاشو. آه آ معلومه که خوبم زخمی شدید چیزا هم مهم نیست. حال موفق شدید؟ بله حسابی ادبشون کردم. خب خدا رو شک. کجاست؟ کجاست؟ چی کجاست؟ کیفم دیگه. اونو دزیده بودمش. دزدی؟ من فکر کردم مزاحمتون شده بودم منم حسابی حالشون جا آوردم همین. واقعا که نابغه این. میدونم. خانم وکیل با ماشین از اونجا دور میشه. از بینی آقای وکیل خون میاد. خورم این مشغول رانندگی ای درک خوب میاد تقرید دستوان میدادی فرماییش خواستم بگم این تو رانندگی خیلی خطرناکه واسه جونتون اصلا خوب نیست در واقع اصلا احتیاجی هم بهش نیست چرا دوست خ بنده یه اماتی خیلی کوچولو توی گوشی تلفنتون داشتم که اونم ازتون تو خیلی هم سپاس بذاره حالا چی باعستین؟ حرکت کنی دبخند بزنی زندگی زیباست دنیا تو با آخر نرسیده که ادامه بدیم آقای وکیل کنار ماشین خانم وکیل مکی نگه می داره کیف اونو آلام. از توی ماشین خودشمون نشون میده و از اونجا میره همین حالاتشکای داد. داد می نشون میدم و چی خا ؟ دو نفر سارق اومدن کیف جناباری رو دزدیدهن بردم از وی جوو و اخلاص اومدم تقریبشون کردم کیف شما را چنگشون در آوردن تقدیم میتون کنم چه حرفی شما دلز تو دیگه زحمیام شدم اینا اینجا ماش خورده تو چشت حبی فردوس وصیقه و دادخواست برای ابطال ممنوع الخروجی وسامان تو دادگاه بهتر به فکری دفتر وکالت دیگه باشه خانم کوچولو حالا برو واسه آقا جون تعریف خوا چه خسته آقای وکیل به دم در منزل پدر خانم وکیل اومده خرم وکیل از گوشی آیفون تصویری داره اونو میبینه و صحبتای اونو با پدرش میشنه پیش خودم گفتم اگه تا فردا شب بکنم ممکنه ایشون خیلی قصه بکنم واسه همین با تو رفتم از توی برنامه دفتر رو برداشتم و زنده بشه بذارم. اصلا کار خاصی نکردم. وظیفه من بوده. به حال دیگه ایشون حق دارن به گردن ما. ببین شما تو همین حادثه <تصفح> اصلا چیز خاصی نیست. پس نخوشو نگران به حال حس رفاقت و همکاری به درد دیگه هم تیممقاهایی میخوره دیگه. چرا رفتن پس پتر؟ اینا بفهمه کیفش پیدا شده خیلی خوشحال میشه. در حال لطف کردی پس من به عنوان یه مرد فقط وظیفه‌مو انجام دادم. آخی. نازشی الهی. دلیل می‌خواستی می‌فرماین؟ خیر پیش. خدا گناهار. سایه علی کندش ایشالله پدر در ساختمونو میبندی. می‌بنده. وکیل به طرف آیفون میاد و برای خانم وکیل شکلت در میاره. میشه مجد... مجد... مجد... لبخندم پرامش شه خانمچ یه میجد بهت نشون بدم که حذ کنی کیف دوست دفتر وکالت خانم وکیل مشغول جمع‌آوری وسایلشه حالا همشه عجله هم تو کار نبودم میتونست این یکی دو روزه دیگه هم بمونی تا همین حالش هم بیاغه کردم آپارتمان امایه عزیزم و گذاشتم شدم همسایه جنابالی شاید موندی ممر از رو دسته کی تقلف کنی؟ کجا درسته که دارم اینم ولی اینجا هنوز اتاق منه هر خصوصی سرت نمیشه حالا ما اتاق کارتون موده اتاق خونتون که نیست که بیرون اصلا داری سهم بدیه منه بدی؟ آقای وکیل سریع یه چک بخوانمه بکیه تا آخر وقتی امروز آزاره پس بگو بری چی دماغی هر چند اعتباری نداری ولی میتونی چک بدی منطقه روز باشه آماده است اونتا بهت زمت بکشید بخابنید به حساب تو فرد پاس پشه احساس تحادید نامه تحادید چی؟ منی برفسق قرار قرارداد مشارکت اجاره بلافصه دو پس از پاس شدن چک میدونید که گور نره هر تو سفره تا شما بنویسید و امضا بکنید من میام خدمتون بله؟ سلام سلام ناصر تویی؟ بسر زنگ دادی؟ شایین لحظه که نتونستم کاری بکنم به جون خودت ناصر مردم تا خودم رازی کردم بابت پول باید حرف بزنم اما خب گفتم که آخه برای چی؟ شهرمندت جون سامان. این چروزه دارو ندارم و نفت ند کردم تا تونستم سه ساقه هسته بانکو یه جا بدم که این زنده آزاد بشه کاش دیروز میگفت چه حالا چکا دادی؟ همین حالا پیش پای شما ش على خوبه به حساب. تا خدا کریمه. خانم وکیل به بانک میره و سری خواهان وصول چک میشه اما پولی تو حساب نیست خانم وکیل یه پلیس به دفتر وکالت اومده سرکار بعد نبود محسه اختیاری دستم نبرش بزنینو اینم این از مجدگونی که میخواستی من با دمای خلافکار توی آسانسور نمیرم مرد حسابی. آدم حقیه. خانمو میخور آخه. تو با تو همیخوای سر منو بیترشن ناره. چطوری فرهود زندی؟ آقای قنبری. یه زحمت بگشن. این کارتون وسیل منو ببریم بالا. مندگار شدید اینشالله. دیدم همکارم کلاه بردار از کار در و گرفتنش. اینه که گفتم دفتر خالی نمونه. خانم وکیل قانون جدید هزینات اطفال ذكور رو از رادیو میشنویم. خوشحال بشی. بر اساس این مصوبه که با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام حمایت از حقوق زنان و مادران، سرکار ما میخوام خوام رضایت بدهم. شما تعهد نامتون رو میدین، چکتون رو پس میگیرین. بهتره شما به فکری جامعه کنه برای خودتون باشین. وکیل بعد ازی آقای وکیل در حال رانندگی مشغول صحبت با بنگاهی املاکی اگه همین امروز یه جای مناسب واسه من پیدا نکنید، پدرت خوب، مادرت خوب، جد آبادت خوب، یه مدت هم پیدا نشه. گفتم به سلامتی دل خوش با خانم مهندس وصلت کردید، رابطه کارش همین. وصلت؟ اه. اه. ای بده. غلطه شعار گیم من دیدی. شراورفش اصلا به تو ربطی نداره. مدرسه به آپارتمان من چی شو؟ آقا ببین، خب ببین. کنم تشته نیازمندی حسابی یه چه چه خیلی خب، قطع من پشت خاطی دارم میزنم به فکر من باش سلام علیکم خانم. چه عجب یادی عزمه بله خانم وکیل به دم دفتر وکالت میرسه در باز نمیشه آقای وکیل روزنامه به دست تشریف دا داشته باشی خوب همراش باشه وای قانون هزینات اطفال هنوز قطعی نشده. در رو به روی خانم وکیل می‌بنده به سه شماره, شماره اگه در رو رو من باز نکنی رو باز می‌کنی ora با بیا خانم کوچلو. یک دو سه خانم وکیل میره و با معمور برمیگردی خانم شما اگه خودت کلید رو چیلقدر در میزنی؟ چرا نیگه سرکار؟ قفل عوض کرده در با کلید خانم وکیل باز میشه خانم ما رو مسخره کردی؟ شما چه زمونم لال خودت اهل قانونی مثلا آقای وکیل به معمول اشاره میکنه که خانم وکیل دیوانه است خدا شفاعت بده انشاءالله انشاءالله انشاءالله چی بهش گفتی دقل باز بهت میگم چی بهش گفتی که اینو گفت سبر کن. اگه دیوونت نکردم اگه عشق تو در نایی منو من عشق خانم وکیل تو روزنامه میخونه که مصوبه مجلس در رابطه با هزانت اطفال زکور از طرف شورای نگهبان رد شده واقعا حالا دیگه اشکش در اومد تحصیرتو که نبوده عزیزم ناراهم نباش حالا کجایی؟ قبرستون نا امید نباش امکانش هست که مصببه بره مجموعه تشکیس مسلحت لر این مورد خواست بایدین تاثیر تصیر مطباعت و دستکم گرفتی خانم وکیل. این یکی دیگه تخصص منه میتونیم چنان موجی را بندازیم که نماینده مجلس حتما مصببهشون شونو بفرستن مجموعه تشکیس مسلحت نظام یعنی یعنی واقعا شدنیه یال تخت تخت فاز مطلب مقاله تهیه کنیم. شاید با نماینده های مجلس مصاحبه کنیم. مخصوصا نماینده های زن. باید زن های مطلقه اکس و مقاله تهیه کنیم. بچهای طلاق. باید از همکارای دیگمونم هم تو نشریات مختلف کامنت خ باید جامعه جامعه زنارو تکو داد. زنده باد. زنده باد چی؟ زنده باد مادران تنها. زنده باد مادران تنها. برین دو چیزای پچالم شنگهای راه انداخته. چلمه هیچ کاری نمی واقعا چرا ما نشستی ما هیچ کاری نمی تو مگه نمی رفیق رفیقه شیشا دبیره این مجله راه نرفته است مگه نگفتی زنش طلاق میخواد؟ خب چرا زده ماش نمی مگه قرار نبود همه چی بی سر و صدا اتفاق بیفته؟ <تصفيق> کار از این حرفا گذاشته پاوگ شرف نمی نه؟ بله آقا نه نه بفرمید. بفرمید. راهپیمایی زنان به سرکردگی خانم وکیل و خانم نیفخو در دفاع از هزانت اطفال به مادران راه مردان به سرکردگی آقای وکیل و ناصر نیفخو در دفاع از هزانت اطفال به پدران از از در از به از شبکه مصورات امروز مجموع تشکیس مصدحت نظام در جلسه امروز مجموع تشکیس مصدحت نظام طرح تصویبی نماگندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص هزانت فرزندان زکور که موادی از آن اصول شورای نگهبان مقایر شهر شناخته شده بود مورد بخص و بررسی قرارید در این جلسه حساس رقع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی و اقمال برفی تغییرات زن خوشحال میشن پسر نیکو به طرف مادرش میده خودم وکیل به طرف آقای وکیل میده و پیروزمندانه چکو به اون برمیگرد خانم وکیل توی خونه از همراه با پدرش توی خونه از همراه با پدرش پدر بله؟ سلام موبایلت چرا جواب نمیدی سلام حت بزن الان کجام چه میدونم با دیسکو نخیر تهران تا حاضر رسیدم چادایم بی ملاحظه ای هستی فکر نمیکنی شک کنم از خوشحالی میبینم که مهربونتر شدی امروز دفتری بابا جونم امردم ببین بابا همه باید حل بشه بعد بعدم بهت زنگ میزنم خاطر بس کنه چرا <تصفح> یه بار برای میشه جوابش نمیکنه دیگه چه جوری کم محلی تو زدن صد بار گفتم از رو نمیره که پیله اونم میگیو میخواد مثل تو همه چی تمام که مایه یه مبعاتش بشه از طرف دیگر هر غلطی خاص بدونه. شما دیگه نگیم بابا جون اگه من ببینم جواب رو میدم به خاطر همین پرورنده است که به معرفی کرده یه جایام به درد میخوره امان از دستتون من دیگه بعدا باید سریام به محربه بزنم خداپیشه دفتری بکنند سلام خانم اسخاری میکنم موزم شدم شما تهران تشریف دارین خب خواهش میخواستم اگه ممکن باشه یه قراری با هم بزنیم امروز آره دیگه شاید ما هم همین بده باش خدا هست سلام ناصر نه خیلی امروز نی نیوردن زارم به خودشون مرخصی دادن باشه دیگه مهم نیست بذار هر وقت داشتی بده موضوع دیگه باشه میم باشه نه من خودم میام اونجا بارو برنیت خدافیز از اونی که میخواستیم بهتر شد سامان الان دیگه مال توه اخمات باس کنه خوشحال باش خوشحال که هستم اما اما چی؟ اوم مشکل مسالمان نیست. اگه ناصر از ایران بره من چی کار کنم؟ دوستش دارم فرود. نمیتونم فرمانفش کنم. واوی. بسیار میچور جان جوهر. قضیه مهاجرت مهاجرتی کار نبود بابا. من اینجوری وانمود کردم شد میخواستی آزدارش بدی آره نه بابا من میخواستم یعنی نمیخواستم من ب... اصلا نمیدوم چی میخواستم بابا که تو سیشتشی هستم واسه چی طلاقش خب خب آخه بابا این با این فعالیت حرفش کشته بود ما رو. مدام مجله جمعیت حمایت از زنان مسلمان جمعیت حمایت از خانواده کوف درد زهر ماریه به قرم سبزی نمیپخت پخت یه قرم و اسف نمی پخت اصلا بخوایی فرموش کرده بود تو مادری و همسریشو حسودیش می شود ببینه که منم به اندازه اون تو کارم موفقم منو بگو که بکنی کنم ازش متنفری اما شاید اون تو رو دوست داره یعنی حتماً دوست داره ولی من به هیچ وجه حاضر نیستم غرورم زیر رو پا بذارم اول اون باید پیش قدم بشه دوستش دارم میخوام به زندگی کنم اما نه به ازای ازت نفسم تمام این ها رو اون باعثش بوده باید هم خودش پا پیش بذاره این که معلومه چه جوری اینه که مهمه خیلی خوب اینم خیلی معلومه تو میدونی نه من تو میدونی بینا آره. تو که نمیخوای مذرق این پسر رو زیر زبون کشی کنم؟ این از من نخوا، بعد از این همه سر کلزا و کل ما نمیتونیم مثل دوتا آدم هم حرف بزنی. خیلی خوب اینجوری نگام نکن باشه باشه حرف میزنم فقط اگه تو حالا دفتر خالی نکرده باشه خودشه بله سلام خواهش میکنم باشه تو یک ساعت دیگه خواهد برای نهار دعوت هم کرد گفت راجب سامان با هم حرف بزنی راجب سامان راجب سامان که دیگه حرفی نمونده است فکر می‌کنم ناصرم خواسته که از طریق من زیر زبون میکشتی کنه یه اسم آقا پیدا کن حتما نماز همکارات باشه اسم چی؟ یه آقا مجردم باشه خانم آقای وکیل توی رسطورن خیلی نگران این بچه منم همینطور بچه بابا میخواهد. همینطور مادر. بنظرت میشه نهی کتر از این قضیه مهاجرت منصرف بشه؟ بگو چرا؟ چرا؟ چنجوری هر داقل هفته یکی روز میتونه سامانه ببینه؟ منو به محبوب یه پیشنهاد خوبی دادم. که مهاجرت نکنه. ناصر؟ نه محبوب. بهش پیشنهاد دادم که ازدواج کنه. فکر نمی کنم ناصر قبول کنه. ناصر کیه؟ خب وکیل من دیگه. خب محبوبم موکل منه. تو میدونن. نه. نظرم که فکر می کنم ناصر پیشنهاد ازدواج محبوب رو قبول کنه. آقای عزیز من به محبوب توصیه کردم که با این خواستگار سیزمه جش ازدواج کنه در این صورت هم سامان سایب پدر میشه و هم که ناصر میتونه به خارج ما زندگی کنه خوبه اتفاقا برزنه فکر خیلی خوبیه اتفاقا من میتونم به ناصر پیشنهاد بکنم که همینجا بمونه و ازدواج بکنه وقتی اینجوری سامان به جایی پدر مادر است یه جفت پدر مادر میشه نصرا که راه زندگی بودی کارشون به طلاق نمی کشید. این چیه؟ من فکر می‌کنم این دو نفر با هر کسی دیگه یه ازدواج کنه خوشبخت نمیشه. یعنی منظور دیدین که دوباره با هم ازدواج کنن؟ من, ازدواج من جرف زدم. البته همینا گفتیم. ولی فکر نمی‌کنم که محبوب تمامایل به ناصر داشته باشه. خب مطمئنم شما درین هم شف می‌ذنین. گفت موکلتون از اساسمون افتاده داره. همه زن‌ها همینطورن. آوه بخدا بخشید مردو چی؟ هیچ مردی کاملا قابل اعتماد نیست. لغوی یه نسبت ایدئولوژی چیزی بلا نسبت نداره استثنا نداره البته به جز بابای عزیز دلم خالوم محترم شما با این افکارتون بعد دفعی که یه دبایی خیلی بزرگ بشی به اندازه قدتون ببخشید آقا اینجا ترشی داریم من این بی رو تلافی میکنم بایجی خانم وکیل میره شی میگی نسر کچالم کدی رفت نه بابا گیان زدم دوباره گفتم ببینم بتونیم دوباره مثل دوتا آدم با هم حرف بزنیم که دامنم دو کجا بود مرده هسته پیتامل بختی رو وردی گوشی این چی هست گوشی ورヴァン تو تو خاصیت از ندشتیم از ببین خریدم باشین یه بره دیگه, دیگه. اتاق خانم وکیل آقای وکیل حرفای اونا رو میشنه دست آخر مصببه اجرایی شد باید بودی و میدیدی سیامه که ولولهی پا شده تبریک که خبر رو اعلام کرد، قیافه جنازه‌اندیدن داشتن. این دیدن داشت. شکلی شده اون که دل آدم براش تمام می‌شه. لا به تمامه، من خبر لغت بندازیش بیرون. نه بابا، تبریک خودش دل موندن نداره. تو برو به اون خواهر عزیزت بگو که مینا خانم تو اولین پرورنده مستقل حرفه‌ای شاهکار زد. تبریک می‌گم. من تو واقعاً خودم خیلی کنجکاو بودم ببینم نتیجه‌اش چی میشه. صبح که با هم حرف می‌زدیم، مسئله هولا همون پیش اومد که دیگه نتونستم بگم. <متصفح> چه <متصفح> حسی <متصفح> صحبت کردن ماله کار که جایی صحبت تو نیست. مگه کسی نیست؟ فکر کنم زیاد روی کردیم. پاشو. پاشو برو که گند بزنی. آقای وکیل توی اتاقش مشغول صحبت تلفنی با ناصر نیکخوئه. کاغذی از زیر در اتاقش به داخل رد میشه. من میدونم درد چیه. اسادت. گلوت پیشش گیر کرده بنده خدا. این ناصر اصلا نمیفهمه داره چه چه حرف می زنه. لا اله الا خیر خوب بابا سام به من به ببینم تاکلیفی مورد ماتی میشه؟ کدوم مورد؟ ماه رو میگم. دیگه گفتم آتا نیستم بگیر ریختش وگرنه می دختریه. بی... کیو میگی؟ یا بگیر نده تو اندی. یه دارم میگم ده. اوه داغ ولی گرب اسم کوچیک صدش میکردنیم؟ بابا اسم کوچیک. ناصر یه لحظه گوش داشت. سیامک سرب سنج زمین خواستم تاسپسالش کنم گفتم پدرم همومه. آقای میخوام سویت تفاهم ام لطفا باجی. ناصر رودونه برای ما خودم بعداً به زنگ می‌زنم. اما پس این مورد ما بر ما بین کارد و پنیر به نظر نمی‌رسه. خدا ما تاس بگیره. آقایی با یه دسته گل دم در دفتری وکالت ایستاده. خانم وکیل از راه می‌رسه. سلام، خانم بودق مه سلام اینجا این برای شما. کی؟ یا خانم وکیل به داخل دفتر میره البته دستگل از طرف آقای وکیل فرهود زندیه. اینکه به خاطر تناشای اخیر، که همطور نکفته به خودم ببرمش شاید این پیشکش ناقابل با رنجش ها بشه. فرهود زندیه. راسمی آره، حدس دادن چیکار کرده؟ یه دستکولن فرستاده. او خدا روش. ولی چه فایده؟ چی شده محبوبه؟ منظورت چیه؟ ناصر داره از ایران میره. صبح که سامان بردم معتق کودک بهم گفت. بلیط کانالاشم دیده. مگه سامان؟ پیش توه؟ دیشب ناصر آورد و تحویلم داد. دیشب؟ أشات خالی بندی باشه. مثل ازدواج تو شایدم نباشه. من ناصرو میشناسم. هر کاری که بگی ازش برمیاد. یک کل شقیه که خدا می‌کنم خیلی خوب، بزر من یک خود کنم به خدا مینا، هر کاری می‌کنی زود باش خیلی خوب، بذار ببینم چگیلی باید به سرم بگیرم فقط خودو کنی تو حالا جایی اجاره نکرده باشه حیلن خدافید خدافید خدا سکتا، بو سد و هشتاد دو هرومه که این پسر پاک بوش آغاز تو برده ای باقا جان افیدی که جا بذاریش نمیارمش مغازه تا بیگوشی بمونی آخه چقدر من پول آجانس بدم دختر. بذاریم به حسابم بابای عزیز دلم خدافر گولم مکنش امورم یافته خانوم وکیل توی دفتر ایشه سلام علیکم من یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهی پسرتون هستم میخواستم راجبی این پرونده باش مشورت کنم زنگ زدن دفتر تشریف نداشته رفته تعمیرگاه ماشینشو بگیره بعدش چی قراره بیا دنبالم ببراتم خونه خالش بعدشم بره دفترش اسفاصش رو بیاره یه دفتر دیگه اجاره کرده یه چیزایی میگفت ما در که یه جای شیکو دیده مونتا ببخشید راستش درست نفهمیدم بچم از دیروز حالا همش داره بدو میزنه برای جا چرا حشوه هواز پاره نشناهند مادر چون تو که قریب نیستی یه دختره توی دفتر شکل حشوه هواش چه بوده؟ کشکی حشوه هوا. وظیفه چه بود مادر؟ خب چه شی؟ روزشیلی بود دیدم همچین ترگل ورگله. بدینه ما میشه عکسه ها. مطالعه ام چنین بر بچه هم میکنه. خدا لعنتش کنه. نه کم مادر چونی جوری. دکو ایشالا خدا عقلش بده. ایشالا پس من با موبایلشن تماس میگیرم خیلی ممنون خدا ف. باشه مادر جون خدا حشکن آره. بعدی من نگرانم فرید. من بابا تون باورت شده ها. سلام سامان الان از من بوده که من زنگ گوشی چی شده دیگه خودش؟ سلام. سلام. منو کنادت دید. بعدش مو راگه جلوی نش که اون فریده. گور بچه‌ای. سلام سلام. سلام. حالا سلام. چی داشتن میگفتن؟ اخدنی، معحبه معحبه میخواد ازدواج کنه. میگه با یک از همکاراش به اسم به اسم شیرآبادی، پیرآبادی به... و همچین چیزی. فرد، فرد، جان من یه فکری بالی من یه دستی از من بگیر ناسا جان با من که قرار نیست زواج بکنه که میگی چیکار کنم آخه؟ باما برو دوباره با این دختر رفاقت بکن من مطمئنم اونم الان دنش پیش توی باور کن چی داری میگی؟ چیه باور کنم؟ ببینم این رفتارش تازگیش فرد نکرده محبوبه؟ مینا رو دارم بد میگم یه چیزی بهت میگم به بزنی نز زنک نه ولی ولی صبح یه اس ام فرستاده بود چقدم هلپرون شده بود. خب تاثیر گل دیگه گل کدوم گل یعنی یعنی معزم از محبت خارها گل میشود دیگه آره ولی گل کاپ حالا چی نوشته مراد چی اینکه می دونم از رفتارتونش معذرت میخواد و پشیمون شده و میتونم تا یه مادرت دیگه اونجا و واسر فرضت دنبالت جا بگردم ها دونم از این حرفا نمیدونم این دفعه چه کاسه ای زیره نمیپسه ای بابا تا... آ... ببخش من ب... شهر من تو هم به همه چی شرک داری بابا آدم دیگه دیده در حقت بدی کرده حالا فرد جان ناصر حالا تو دیگه تاخچه بالا نزاری به لحظه گوشی دارن سرک پشت خطی دارن ببین کیه ناصر خودشه ها ب... بفرکت منم باش باشه باشه از من خودم بعدم بهت زنگ میدنم فعلا خدا پیس خدا پیس میدونم که به سخت در مدرسه میتونیم کلمه. امروز چه خوش اخلاقی. همیشه خوش اخلاقم اما امروز به دلایلی همچین حالم بهتره. باید که میدونی که. بله، از اسعار لوت فهمیدم. خیلیش میکنه. راستی این آپارتمان شیک و کازیا چی شد؟ تمومش کردیم. حالا تو مرحله گفتگوه گفته گو، بزنیم دلمی تو عمل چی جیمیه. میگم، میگم میخوان یه جلسه دوستان با هم داشته باشیم. راجع به هر گفته با هم صحبت کنیم. حرفای نگفته بله منظرمو که می‌فهمی بله اون راجبه هزینت سامان و اینا دارین میگین بله پیش از همو شروع کرد بله صادق هستم موافقم اصلا تو من دفتر منتظرم اتاق شما که خب عذر شرعی داره اتاق منم که لابا شما مشکل دارید من منطقی به طرف صراخ دارم شما تشریف بیاری. باشه اصلا من تا نیم ساعت دیگه میام خانم شما گفتین که یه پیشنهاد به ناصر دارین. که یادم میاد شما فرموده بودین که به محبوب گفته بودین که حال پیشنهاد جدیدتر داره. بلکی. برای, برای شما. بیاین منو شما با هم. ببین خانم من اصلا تصمیم به ازدواج ندارم. خواهش کن در تو این موضوع صحبت نکن. چتت مت بنفسه من کی هم چه حرف زدم؟ بس بگید. ببینید اگه واقعا منظورتون ازدواج محبوبه و ناصره بعد خدمتتون ارزش کنم که اونا یه کاری تو میشه ها کی از راجب ازدواج حرف زد؟ خود چیه؟ ببینید منظورم اینه که بیایید من شما با هم ترتیب جلسه ای رو بدیم که این دو تا با هم رو در رو به مسائل سامان و مشکلاتشون با هم حرف بزنن. قومه قومه کوچوا بکی. همین نمیشه. چطور گفتش خودمون؟ باشه امه. من همین امروز با ناصر صحبت میکنم در تو این موضوع نیستی به حضور که نیست چرا نیست حقیقتش اینه که من امشب یه جلسی بسیار مهم دارم که باید اونجا باشم همین رو از خییم میکنم لابا در مورد دفتر شیکا و تو این قضیه چیره انقدر شما مهمه خلاه خرچ جلالیم بله سلام سیامک خوبی امه. میام میدون آرژانتی باشه، بگزردن خداست آقای وکی با نراحتی به داخل اتاقش میره چه خیراتی؟ حق شد ولی به خاطر محبوبم که شده باید از دلش در بیارم خانم وکیل شماره موبایل آقای وکیل رو میگیره موبایل آقای وکیل روی میز جا مونده اون شماره خانم وکیل رو با اسم خال سوسکه سیف کرده خال سوسکه؟ من هم دلم واسه تنگ شده عزیزی دلم آره. هرچی تو بکنی همون کافی جبه خوبه خانم وکیل با عصبانیت دست گل و موبایل رو بر میداره وارد اتاق آقای وکیل میشه و اونا رو, رو روی میز اون پرس میکنه برمونه دارم یه لست کشینه گرده این چه ترسه ابروزه کرده خانم؟ از رفتار جانبالی که مبتزل تر نیست ابروزه اشت؟ من؟ اله بله بله و این کی هر اینکی بود قید که. هر بود بودی نفع ممکنه نفست دو بد کنه مگه اینکه همین امروز دوم رو کل بارو که رفتی دیگه برای من گل نفرت. حضرت آقا من؟ بله کمه من غلط بکنم همچون غلطی بکنم خانم و بعدش هم شما لط کنید دیگه باسته بندی اسمس نفرستید برو بابا الو عزیز دلم ببخشین چلیل از ماهتر جدی اون پشت چر تو پرتا میگی فری قربونت برم عزیز دلم بودم خانوم وکیل پشت در برم. اتاق آقای وکیل گوشفاسده نه فعلا با شیش خورده کل انداختن. ای وای بازم شما دوتا زدیم به تیپوتار رو هم دیگه بابا گناه ماری بردبخت بیچاره چیه تو سمیتون میگین ساکت باشی یا نه تو حالت خوبه برونت برم مامان میگفت که یکی از های قدیمت زنگ زده خبتو که شما موبایل ما داشتی چرا زنگ نزدی به خودم از عمرشم معلومات این کاره نیست کلک ببینم تو مطمئنی حالت خوبه راستشو بخوایی نه پس من برم بمیرم دیگه دیگه تو نمیتونی یه دو رو جلوی این دهن ساب مرده تو کار ما را بیفته این دفعه قضیه فرق میکرد ناموسی بود می‌فهمی ناموسی با مینا این نمی‌دسه درست صحبت کنا اه. با من چه میدونم خودت درو میگی فریاد هستم به با با همه چی داشت درست میشه دوباره با سر کله این بچه سوسو پر پیدا شد. کی بازم سیامان آره دیگه آه. باش قرار گذاشتی یه صد حالا به تو چه تو چرا ناراحتی من تو که خودت میدونی من یه وکیل محترم آبرومندم نمیتونم با یه همجواری یه خانم وکیل محترم آبرومن ما رو سیا نکن آقا فریم لایلا حالا تو هم گیل این وسط خانم وکیل یه ایمیل برای آقای وکیل میفرسته اگه باهاش قرار گذاشتم منظور داشتم میخواستم با قار گذاشتانش کنم بره به جهنم حالا منقدر منتظر بمونه که علف زیر پای سفز بشه همین باش! بل نشید عبقشو قبول کنیم یک کچورو عشبه بیام چشم ایشان ها تو عروسی جبران میکنن <تصفح> وا میخوایی منم مثل تو بزبختشم چیه این دفعه جوش نهی بودی خیلی خوب حالا راستی میگم اصلا موبایل جواب نده تا من بیام میترسم تو تماس کرده خورم تدقش بری باشه باشه خدافز خدا, خدا عمر و عزتت رو زیاد کنی خدای شلاله مینه خانم بذاره تو کاسر تا بفمی زن چه بلای نازنینی نفوز بعد نزن فقط یکم باشه همین حالا حالا که شماراشو نگیری بازه یکم بگذاره که حبا نداره باشه چشم بروی چشم امره دیگه خوش وقت باشی خدافز سلام سلام شما حالا دیگه این صدار نمیشنسین امره تون رو ببینمتون. چون یعنی درباره در سامان به خاطر یعنی باتونمای نکردن بله ولی من امشب نمیتونم ام بعد برم یه جایی که نمیتونم بگم کجاست میشه بذاریمش برای فردا شب فردا شب من نمیتونم پرواز دارم به هر حال مشکل خودتونه من نمیدونم ببینید در صورت من امشب رس ساعت 9:00 اونجا و اگر همون کافی شاپی که خانم مینا گفتن بودین بودین نبودینم من ده دیگه دلوقتي... شروانه میستم دوستم برام گودو بای پارتی گرفتن خدافیز خدافیز <ممتوس> به همونی که نمیتونی بگی آه. نکنی بله برونه <متوس> تغذیر خدا قرمه زیادی به اومدم پس بفهمونی عشبه خرکی اومدی مگه نگفتم باش حرف نزن تا من بیام حالا خوبه تو نبودی تو بودی که بدتر میشد که <laughs> <laughs> خیلی خوب حالا اینقدر گریه نکن بذار یکی دو روزی بگذره یکی دو روز بگذره اون فردا میره باور نکن باور میکنه من امشب میرم سر قرار خیلی خوب هر کاری میخوایی بکن ولی من یه فکر جدید دارم یه نقشه حسابی به ثابت میکنم که سر کاری که شبی بشه امشب نرو نرو خانمی وکیل توی ماشین دزدکی دم خونه نیکو خون منتظره آقای وکیل و نیکو از خونه خارج میشن و میرن سوار ماشین میشن. نیومده سر. خانم نیکو توی کافی شاپ منتظر نشسته. لطفاً زود زیاد ولی اون مثل که سر ده دقیقه رفته. نه اومده بود نمیاد گفتم که سر کاری. <متصفح> همینه الان هم رفتن گودبای پارتی. وا که چیزی که راست گفته بود همین بود. یعنی راست میگه فردا داره میره خارج؟ دیگه راست و دروغش مهم نیست. ببینم هنوز کلید رو داری؟ آره برای چی یه در بس بگی سری بیا اینجا. اونجا اونجا کجاست؟ خونه ناصر دیگه. وقت خوبیه. باید برین تو پاسپورتشو بدوسین. بدوسیم؟ آره.الو. آقای وکیل و آقای نیکخو دزدکی با یه چراغ بزرگ وارد خونه‌ی خانم نیکخو شدن. کاش من خر رفته بودم به قرار کی بوده ژرال می ده نه در ازای عزت نفسم من خره خاش بر سر ببین حالا تو مطمئنی که این نادان امروز تو رستوران نشستی আরে آره আরে آره ترنیم ساعت بی Shorey ترنیم ساعت بی یعنی رو ممکنی اینجا باشی بر دعوت یعنی کی خب, خب اگر اومد کوچ خونه کی و تو متونی الان کار از این حرفا گذشته فقط برو کجا قربونم من کجا خب تو اتاق دیگه نمیخوای از ازدواجش مطمئن بشی خوب خواصه کردن این سوال اینا نمگه توتالش بود مرتدی بیدار شد یا جیغ کشی چه حاجت بود تو سر من رسید اینا بگی فاین وقتی مجبور میشم فرار بکنم چقد غرورتو می‌ذریزی لپا چراغ هم چراغ خاموشه تا بده بکنه میره پیش قدم میشه یعنی رجوع میکنی ها رجوع ها اینا بگی فاین چراغ خاموشن که واقعا الان همین چراغ خاموشه بود خاموشه یعنی هم خوش که خوش که ولا استرس خیلی خوب من چیکار کنم اصلا آب میخورن دیگه ها راست میگی يرد الان خانم وکیل و محبوب همسر نیکخو دزدکی و چراغ به دست وارد خونی نیکخو شدن چیکار می‌کنی خاموشش کن مگه نگفتی رفته بود به پارتی میدونم میگم شاید دو این فاصله ایی اومدم دو ملت برگشته باشه اتخابات کجاست اتخابات خونمون ببخشید اتخابات کجا بود آها آه اون بالا کی لاروت من هیچ چیزی نمی‌بینم مری اینه دیگه اینه بعد بقایت ده بری خب ایستاد کی آقای قمباری قمباری کی نمیشناسه تو چرا خودت رو با از... خیلی من چی میدونم اگه تو نگفتی بیرونه؟ اگه 60 سال باش زندگی نکردی تو هم نیستی شبی زندگی انداختی داشتی ساکمه اصلا عارف نیستی بروی بروی جاب جاب جاب خیلی خوب بیا تو برو من نمیام خود برو من می ترسم ممکنه لخ باشه وای خواهی بر سرم اگه لغ باشه که منم نامحرمم میخوایی در بزنیم بگیم لطفا لباستون رو بپوشین نه هر جو سلام میدونی خودت میدونیم خب اگه با تو نرفتیم بزنیم محبوبه و خانم وکیل از خونه نیکو خارج میشن ماشین پلیس اومد باده بیا سب کن دسته <تصفح> داده سب کن از اینجا دیم بیوانم بیوانم وای بیا برو شدیم بحبه خانوم ها محلوب همون چی کار میکنن سلام علیکم علیکی سلام اینا اف خراب بود به ما گفتن از دیوار بیاین تو تو میرفتی یا بیرون تشریف بیاردیم هرجور شما سلاح بدونی بفهمیم پایین بفهمیم پایین در خدمت تو هستین هر چهار نفر از کلانتری بیرون میاد. نیک خوب و همسرش محبوبه خوشحال با ماشین خانم وکیل میره آقای وکیل و خانم وکیل میمونه ماشین شما قرض بده اینجوری به سخت بودو دیر شما خدیل دواره سما بچه آقا در بز خدراشت این پروندم به خیر خصوص تعمل شد با شما را اندگی میکنی یاب. بله سی سی آدم خیلی ممنون بایچ علا سلام یه ماشین میخواستم لطفا میدان کنان طریق پر خیابون جهان آراد ممنونم خود اخوست یه خاشتونه غلط میکنه با تو خانو وکیر منتظر اومدن آشنسه خالون بازاکمه مینا خانو حالا خالون بازاکمه بابا تشبیل خودم میرسونم بهتون تا یه جای دارم با شما حرف میزنم مینا خانو خانم وزارمه حلو دارم گوشه بر نمیداری بفرمایده خدمت باشیم ماشین پلیس اومد آقای وکیل حباسش نیست خانم وزارمه اینقدر لقش بازی نکنم بیا ببینید چی دارم میگم حلو سر تو شده خانم نه خانوم وزارم نه جناب سر کنی یه لحظه اجازه خانم خانم وزارم بگن جونه هرکه دوست داری ناوردی نکنیا خانم شما هم میش اجازه بدید من الان خدمتون توضیح میدم ما اصلا چیزیم در واقع توی یک حرکتی ما الان هم دیگه هستیم بست میگه خانم بستگی داره به چی بستگی داره هر, هر شرطی باشه من قبول نکنم اینجا نام سرکار اینجا اللہ فایسادم خب خانم میگه که این شرط هم پذیرم که بست ثابت کنه ثابت می الان جناب سردار اینجا وایسادم منتظرم تو هر دادگاهی ثابت می بهتون قول میدم بهتون آقا دارم قول میدم جناب سردار خب میگه ثابت می کنم چی سردار خانوم برای بار سوم میگورن ایشون بالاخره نامزده شما هستن یا نه بله من از کلام خدمتتون که مبارک حالا شما شما هم متشکرم عزیزان خسته نباشید این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی نوروزی، تهیه کنندگی آقای فرشاد آزرنیا، تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما تقدیم شد. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.